آقای مسود پویا همکنون روی خط تلفن هست که برگزار کننده موسیقی زنده هست که در شهر اودنسه همون که پیشتر گفتم این کنسرت بعد از پانزده سال در اودنسه برگزار میشه روز بیسته هفته ماه می هست از آقای مسود که همکنون روی خط تلفن هست و یکی از برگزای این موسیقی کنسرت در شهر آدنسه هست خواستیم که توضیحاتی در رابطه با این کنسرت برای شنواندگان رادیو البرز بدن. در خدمت شما هستیم آقای پویا. زمین باشیم. با درود و سلام خدمت شما. شنواندگان گرامی رادیو البرز و همبطلان عزیز مقیم شهر جیبای آوز و هومه. ممنونم از این امکان و مقیدی که در اختیار من گذاشتیم. را به پاس از اعماتی که می کشیم. ا اجازه ترجیح یه چند تا نکته رو من تاصیح کنم با اجازه شما من برگزار کننده و تنها برگزار کننده این کنسرت هستم و اماد خواننده یکی از خواننده ها و خواننده اصلی این کنسرت هستش اماد احمدی. ایشون خیلی‌ها رو ممکن است از طریق اسمشون نشناسن ولی آهنگاشو میدونم مطمئنم که در تقریبا همه جشنها از جشن تولد گرفته تا جشنها و مهمونیا ها بر پخش میشه همونطور که شما لطف کردیم فرمودین م... کنسرت بعد از 15 سال اه اه در اودنسه برای اولین بار برگزار میشه و من یکی از جلالیه که این اطغام مکردم کردم این بودش که میدونستم و میشنیدم از دوستان اطرافیان میشیدم که چه حضر عزیزان سخته که در کنسرت هایی در کوپناک دوستان که زحمت میکشن که کنسرت میزنن برگزار میکنن شرکت کنن به خاطر دوری را و مخارج سنگین را و متعقی بود خیلی رخ بود سال ها بود این فکر تو فکر من بودش که همچین حرکتی هم ما جای خارج از کوپناک انجام بدیم با احترام تمام ارزیزانی که تو کوپناک زحمت میکشن و بتونیم شاید نیاز اون چند ساعت شادی شاد بودن و در کنار هم بودن این برای هم کنیم به خاطر همین دیدم چه جایی بهتر از جایی خود خود که خودم زندگی می کنم جرایش و خودی که وسط هستش به قول معروف هم امکانش از از یولند و شهرهای داخل یولند و هم شهرهای خود هستیم و اگر دوستان مهمانان عزیز کوبنهاگ هم که مایل باشن که قدمش شروع چشم که تا الان هم کردن این از دلیلی برگزار شدن این کنسر در اودینسیانسش اماد احمدی رو من یه توضیح بدم اه، آهنگاشو میتونم ایشون تا چند پیش آمریکا ساکن بودن و الان در سوید ندیگی میکنن و از آهنگاش هم که میشه آهن معروف این معروفترین آهنگاش که تو مهربونی تو یه حسی و که به تازگی چند وقت اومد بیرون دل بیقراره و روز این روز خرابتن و الان هم که چند تا آهنگ جدید در دست داره که برای روز کنسل آماده گذاشته از خواننده دیگه این ایشون با کنسرت آقای اماد با گروه اختصاصی خودش میاد چهار نفر و خواننده بعدی آقای امین هستش امین تی ام این چون خواننده قبلی گروه تی ام 1 قبلی گروه تیم, تیم بک هستند که احتمالاً من شنوندگان این گروه حتماً می‌شناسن. اگر نمی‌شناسن نش... میتونن مثلا دختر بندر، آهنگ دختر بندر رو یا لاله، آهنگ لاله و تو کلاس مدرسه، تو کلاس سر کلاس، ببخشید سر کلاس روی یوتیوب اینا رو گوش بدن. هلندیه آقای امین چند سال پیش از این گروه جدا شدن و به صورت سولو و تک خودشون به فعالیت خودشون ادامه دادن ایشون هم یک از خاننده های این کنسرت هستن دی جی یک از به نظر من یک از بهترین دی های دانمارک ایشون هم هستن و از اول تا آخر برنامه به این عزیزان رو همراهی میکنن در کنار گروه اختصاصیشون و یکی از گروه جدید تاسیس شده گروه هستش البته گروه،, گروه مخصوصا اسم نزداشتن طیلن ولی آقای مهداد و مسیح این دو, دو عزیز که کدوم در یک آقای مهداد در اودنسه زندگی میکنه و مسیح هم در آلمان زندگی میکنه ولی با هم فعالیت دارن با هم تمرین دارن و گروه درست کردن گروه پاپ شادی درست کردن که برای اولین بار در اودنسه میخوان به برنامه کنند. و من بودم برنامهایی که ازشون دیدم برنامه های بسیار جالب و شعاری هستش این به اصطلاح ای از اطلاعات برنامه اون روز هستش برنامه هایی متنوعی رو مطرح کردین میخواستم بپرسم همونطوری که گفتم روز 27 ماه امی این برنامه, برنامه برگزار میشه چه ساعتی هست و شنوندگان اگر تمایل دارن از کجا میتونن بلیط تهیه کنن محل کنسرت کجاست بله بله تشت محل کنسرت در سالن سالن میوزیک هاست یا موزیک هوس اودنسه است پاستن هامنسه پوست پاستن که یکی از متأثرترین سالن های کنسرت برای در استشراق دین گفت که خود گروه های دانمارکی در این کنسر، در این سالن کنسرت و شروع برنامه هم از ساعت 6 هستش تا ساعت، یعنی ساعت 6 بعد از تا یک شب که طبق برنامه خودم و برنامه که کردم از همون لحظه باز شدن در ساعت 6 یا حداکثر قبل دیگه دیرتر و نیم باید برنامه ها شروع بشه موزیک آغاز بشه و عزیزان از همون لحظه بتونن لذت ببرن از این کنسرت و از رياض و به قول معروف اون چیزی که من اکثرا تو کنسرتام میدیدم خیلی صاف میشه تا خواننده بیاد من سعی کردم که به این شکل نباشه و اهل یه ایده دیگه, دیگه متفاوته به نظر خودم ای... قیمت بی... قیمت بلیط هم 200 کورن هستش برای عزیزان و اپتل روز کنسرت 300 کرونه ساعت 9 شب در کنسرت در بسته میشه و بیلیت فروخته دیگه نخواهد شد به خاطر برنامه امنیتی و قوانین خود سالن قیمت بیلیت برای کودکان 7 تا 10 سال هم 100 کرونه و زیر 7 سال هم اگر دوست دارن عزیزان بچه رو با خودشون بیارن بچا اون وقت اگر شنوانده ها برای اطلاعات بیشتر خواستن تماس بگیرن و یا فروش بلید به کجا باید مراجع کنم؟ به چه شماره تلفنی؟ شماره تلفن خود من 20 25 چه1 چه9 20 25 چه و1409 تلفن خود من من خودم تنها کسی هستم که بلیط می و بلیط نمیشه رزرو کرد و از طریق موبایل پیل به همین شماره که گفتم وقتی که پرداخت بشه من به محنگ از طرف بانک پیها اومکه دوستی عزیدی به تعدادی مبلغی پرداخت کرده من سی به اون شماره تلفن میرسستم و تایید میکنم که این مبلغ به دست ما رسیده و بلی نزیزان عزیزان بکنن بلیط به صورت دستبند ورودی برای این عزیزان و به اسم اون عزیزی که پرداخت کرده دام در خدمتشون براشون ردیف میشه و تقدیمشون میشه دام در اگه از اطلاعات بیشتر هم اگر خواستن میتونن باز با همشون مادر با من تماس بگیرن یا در تمام سایتی که در فیسبوک هستش که برای ایرانیان عزیز درست شده و زحمت میکشن و این سایتا رو میچرخونن از جمله سایت خود رادیو العرب که من ممنونتون هستم این ده تمام اطلاعات و یا حتی اعلامیه این ویدیو ویدیوی که خودم درست کردم ویدیو تبلیغاتی و همه اینا در این سایده هستش این و از دیروزم که من متوجه شدم آقای امارت خودش به اتکار خودش تبلیغ ویدیو تبلیغ کنسرت رو در شبکه جهانی پی ام سی به سلاح همه کرده و پخشمش خیلی سپاسگزارم از شما امیدوارم جشن خوبی داشته باشید موفق باشید زنده باشید ممنون از همکاریتون ممنون از این موقعیتی که به من دادین و ممنون از زحماتی که می‌کشین از شما و چه گرامیتون گرامی‌تون خدا، خود خداویدی میکنم. و امیدوارم بتونم در اودنسه با یک کنسرت بسیار متفاوت و خود در خدمت عزیزان باشم